به نام خدای مهربان سلام خدمت شما دوست عزیز من سید حسین عباسمنش هستم و با هم سپاسگزار خداوندم که من فرصت داده که با شما عزیزانم باشم و امروز میخوام در مورد سوالی که خیلی زیاد پرسیده میشه از طریق قسمت نظرات سایت توضیح بدم اونم بحث روابط خب همونطور که میدونید خیلی روابط برای ما مهمه ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم رابطه ما با همسرمون رابطه ما با دوستمون رابطه ما با فرزندانمون با پدرمون با مادرمون برامون ما خیلی مهمه و تقریبا میتونم بگم خیلی شایع این موضوع که افراد روابط خوبی رو تجربه نمیکنند مشکلات دارن خیلی بالا و پایین داره روابطشون یا تو بحث ازدواج فرد دلخواه رو پیدا نمیکنند. یا چند روز با هم خوبن چند روز بعدش دوباره قهر و دوام و ناراحتی یعنی خیلی از افراد کلا نوع رابطه‌شون شکل رابطه‌شون یه موج سینوسیه که خیلی زیاد بالا پایین داره خیلی کم زمانهای خوبی رو با هم دارن خیلی زود به تنش میرسن و تقریبا میتونم بگم 90 درصد سوالاتی که پرسیده میشه در حوزه روابط همینه که آقا من چیکار کنم که فلانی منو دوست داشته باشه چیکار کنم که رابطه‌مون قشنگ بشه با همسرم چیکار کنم که بتونم با فلانی ازدواج کنم چطور چه رفتاری رو از خودم بروز بدم که یک فردی رو که مد نظرمه عاشق من بشه یا بیاد خواستگاری من به خواستگاری من جواب مثبت بده و و, و سوالاتی از این دست که یه توضیح کوتاهی رو من میخوام بدم یه قانونی رو من باش دارم زندگی میکنم سال هاست و اون قانون من کمک کرده که هر چیزی رو در زندگیم بخوام بتونم ایجاد کنم و خلق کنم و اونم اینه که ما در دنیای فرکانسی زندگی میکنیم که هر فرکانسی رو به جهان هستی ارسال کنیم جهان حسی شرایط اتفاقات افراد برخوردها رفتارها و در واقع بازخوردهایی رو به ما نشون میده که همگام باشه که معادل باشه با فرکانسی که ما به جهان حسی ارسال کردیم این کل داستان زندگی ماست یعنی این قانونیه که اگر درکش کنید زندگیتون رو اگر درک کنید و بتونید فرکانس های مناسبی رو ارسال کنید، چون یه قسمتش اینه که درک کنید که خودتون دارید با فرکانس های خودتون اتفاقات رو برای خودتون ایجاد میکنید این یه قسمتشه حالا قسمت بعدش اینه که چطور فرکانس های مناسبی رو ارسال کنم چون خیلی از ما به ست ناخوشاگاه با تعجب باورهایی که داریم داریم, داریم در بدونی که بدونیم به صورت ناخودداگاه فرکانسهایی رو به جهان هستی ارسال می کنیم با چی فرانکانس ها رو ارسال می کنیم؟ با توجهمون با کانون توجهمون توجهمون چطور به وجود میاد؟ با چیزهایی که می بینیم با چیزهایی که میشنویم با چیزهایی که در موردشون صحبت می کنیم با چیزهایی که به یاد میاریم از گذشته و با چیزهایی که تجسم می کنیم در مورد آینده اینا کانون تمرکز ما رو به وجود میاره. حالا اگر در روابط مشکل داری به این معناه که داری فرکانس نامناسب فرکانس ای رو به جهان هستی ارسال میکنی که افرادی رو برات میاره یا برخوردی رو از همون فرد مورد نظرت ایجاد میکنه که تو دوستش نداری که برخورد مناسبی از نظرت تو نیست. خب کل داستان همینه من از وقتی که این قانون درک کردم و بهش عمل کردم واقعا روابط من روابط فوقلادهیه من تا به حال در زندگی زناشوی کسی ندیدم یک عشقی که من دارم الان دریافتش میکنم ندیدم کسی دریافتش کنه ندیدم یه همچین رابطه جادویی و عاشقانه بین دو نفر باشه رابطه همراه با درک متقابل با فهم متقابل بدون هیچ کنه با بستگی، با عشق، با شادی، با زیبایی در تمام در واقع جنبایی خودش این رابطه به این کیفیت تا به حال واقعا میگم من نه توی هیچ کتابی خوندم تا به حال در زندگیم نه توی هیچ فیلمی دیدم حتی فیلم های و عاشقانه و نه توی در واقع زندگی افراد تونستم یه همچین اولگوی رو ببینم این چیزی که الان من دارم باش زندگی میکنم و خدا رو سر هزار مرتبه شکر می کنم به خاطر اینکه به من یاد داد که از قوانین استفاده کنم و زندگیمو هر جوری که دوست دارم رقم مثلم. در مورد رابطم با فرزندم همینطوره واقعا رابطه که من با فرزندم دارم. تا به حال من ندیدم یه پدر و پسر اینقدر رابطه شون قشنگ باشه صمیی می باشه. اینقدر رابطه رابطه در واقع عاشقان ای باشه، رابطه دوستانه ای باشه واقعاً. تا به حال من ندیدم خدا رو شکر می کنم. خیلی همه چیز قشنگی توی زندگی من از وقتی من تونستم این قانون درک کنم حالا من خیلی دوست دارم که این احساسی رو که خودم دارم تجربه می کنم تو زندگی افراد رو هم تو زندگی افراد دیگه ای رو هم ببینم این واقعا عاشقانه من دوست دارم که بتونم به افراد کمک کنم همون چیزی رو که من بهش رسیدم و ازش دارم لذت می برم رو بتونم بهش برسم و لذت ببرم. بخاطر همین اینقدر با قدرت با ایمان با شاید بعضی موقع با اصرار میخوام رو به شما آموزش بدم میخوام به شما کمک کنم که بتونید کانون توجهتون رو کنترل کنید بتونید افکارتون رو کنترل کنید بتونید باورهای مناسبی رو ایجاد کنید و بتونید زندگیتون رو در تمام جنبه نه فقط بحث ثروت نه فقط بحث روابط در تمام جنبه ها بتونید جوری زندگیتون رو رقم بزنید که واقعا رویایی باشه واقعا فوقلاده باشه و این حق شماست و این حق همه انسان هاست که بتونن زندگیشونو خودشون رقم بزنن اما به خاطر باورهای نادرست به خاطر فرکانس که ما به جهان هستی ارسال میکنیم و در مسیر خاصه نیست شرایط نامسلوبی رو افراد تجربه میکنن در زمین روابط این قانون رو شما اول باید بپذیرید که تمام رفتاری که با شما میشه این قسمت خیلی خیلی مهمه که تمام برخوردهایی که با شما میشه از طرف همسرتون دوست دخترتون دوست پسرتون نامزدتون فرزندتون همکارتون رئیستون کارمندتون نمیدونم یه،, یه فرد توی خیابون نونوای محله هر کس دیگه ای. هر برخوردی که با شما میکنه شما دارید اون برخورد رو خلق میکنید شما دارید به وجود میارید که افراد چطور با شما برخورد کنند که افراد چه واکنشی به شما نشون بدن این این قانون اصلیه این اصله در واقع خیلی مهم زندگیه که باید بشه اینو درک کرد یعنی خیلی از ما به صورت ناخداغا فکر میکنیم آقا نه مگه من تأثیری داشتم که فلانی با من فلان کار کرد یا فلان خیانت رو یا فلان برخورد کرد یا فلان توهین کرد مگه من تقصیر داشتم مگه من کار داشتم مگه من عمل بدی رو انجام دادم مگه من رفتار رو انجام دادم من میخوام بگم که بحث بس عمل و رفتار نیست بحث بس فرکانس هایی که شما به جهان هستی ارسال میکنید چطور میتونیم اینو ثابت کنیم به راحتی همون فردی که شاید با شما رفتار مناسبی رو نداشته باشه آیا با همه اینطوره آیا شما افرادی رو تو زندگیتون میشناسید که این فرد مورد نظر با آنها رفتار خوبی داشته باشه یا رفتار متعادل تری داشته باشه یا مناسب تری داشته باشه یا با همه همین جوری داره برخورد میکنه و جواب قطعاً خیره نه این با همه اینطور نیست با بعضیان اینطوره چرا با بعضیان اینطوره یا حتی شما میتونید بگید نه فقط با من اینطوره ولی با همه خیلی هم خوبه خیلی هم احترام میذاره خیلیم نمینم برخورد مناسبی داره اما با من این طوره یعنی خیلی از شماها اذعان دارید که این بابایی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم که حالا همسرتونه فرزندتونه نامزدتونه کارمندتونه رئیستونه در مورد من یه سری مسائل داره ولی من دیدم با بعضی از افراد خیلی خیلی هم عالی بوده این سوال و این در واقع کنتکاوی باید به شما یه سری چیزها رو یاد بده که چطوره مگه این آدم همون آدمی که با من این رفتار نامناسب رو داشت نیست پس چرا اونجا اینقدر خوب عمل کرد؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و یه سؤال دیگه و از خطب پرسید آیا شما فردی هستید که این رفتارهای مناسب از طرف افراد مختلف با شما میشه؟ یعنی خیلی از افراد هستن تو روابطشون مشکل دارن؟ یک رابطه, رو یک رابطه به هر دلیل قطع میشه رابطه بعدی شروع میشه و رابطه بعدی هم دقیقا از جنس رابطه قبلیه یعنی همون بحث ها همون درگیری ها همون ناراحتی همون دلتنگی ها همون ترد شدن ها همون حرف های نامربوط شنیدن ها و،, و،, و خیلی مسائل دیگه اتفاق میوفته چرا این اتفاق میوفته چرا یک الگو داره توی زندگی شما تکرار میشه جوابش اینه که به خاطر اینکه ما داریم این اتفاقات رو رقم میزنیم. به خاطر اینکه فرد دیگه در زندگی ما نیست ما مهوریم ما اصلیم ما باید افکار مناسبی رو در خودمون ایجاد کنیم که این کار کار زمانبریه نه خیلی زیاد ولی واقعا انرژی میخواد واقعا باید روی خودمون کار کنیم اما نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که یک زندگی سراسر عشق رو تجربه میکنیم سراسر آزادی رو تجربه میکنیم سراسر آرامش رو تجربه میکنیم سراسر زیبایی و لذت رو تجربه میکنیم مسلمان عرضشو داره از کی ما تجربه میکنیم این شرایط رو از لحظه که تصمیقی رو باورات کار کنی و از لحظه که باور میکنی با تمام گوشت و پوست و استخونت که تو هستی که داری رفتاری که میشه رو، خلق میکنی که تو هستی که داری افراد خاصی رو به زندگیت با فرکانسات نه آگاهانه به صورت ناخودآگاه داری دعوت میکنی به زندگیت حالا که تو هستی که داری این کار رو میکنی تو هم هستی که میتونی شراعت رو تغییر بدی یعنی اگر من باورم این باشه که یک عاملی بیرون از منه که داره زندگی من رقم میزنه من بین نتیجه‌م می‌رسیدم که من نمیتونم شرط رو تغییر بدم میخواد یه عامل از بیرون از من داره این کارو انجام میده اما اگر باورم بشه که نه من خودم هستم که دارم شرایط رو خلق می‌کنم اون خیلی راحت میتونم شرط تغییر بدم چون میگم آقا خودم دارم این فرکانس های نامناسب رو ارسال می‌کنم این نتیجه نامناسب هم ایجاد میشه حالا من میام روی خودم کار می‌کنم روی باورهام کار می‌کنم فرکانسام عوض میشه و نتیجام عوض میشه هر وقتم یه جایی دیدم نتایج دوباره خراب میشه به این نتیجه میرسم که من هستم که باید روی باورم کار کنم دوباره میام روی باورم کار میکنم و نتیج اونجوری که میخوام رقم میزنم یعنی من زندگیم سراسر نشونه های استفاده از قانون و نشونهایی اینه که من تونستم همه چی رو دیگه اونایی که از نزدیک با من آشنا هستن میدونن که من چه روابطی رو دارم و چه دوستان خوبی رو دارم و چه عشقی رو دارم از از تمام جهان دریافت میکنم دیگه همه میدونن یعنی همه از آن دارن که عباس آدمی که همه جوره همه دوستش دارن همه بهش لطف دارن همه بهش محبت میکنن همه بهش عشق میورزن و همه بهش کمک کردن و منم اینو قبول دارم ولی آیه قبلا هم اینطور بود نه به خدا قبلا اینطور نبود از وقتی که من از قانون استفاده کردم و تونستم باورهای خودم رو به صورت بنیادین تغییر بدم و بهبود ببخشم نتایجم برای من اینجوری شد و من مطمئنم که برای هر کسی که بخواد زندگی خودش رو کنترل کنه و متحد باشه که رو باورش کار کنه اتفاق می بیفته چون برای هزاران هزار نفر افتاده من یه دوره رو آمادیکم به نام دوره عشق و مودت در روابط هزاران هزار نفر از این دوره تا حالا استفاده کردن هزاران هزار نفر و نتایجشون هم میتونید برید بخونید توی خود محصول تو قسمت نظرات هست هزار و فقط کامنت گذاشتن روی اون محصول میتونید بید بخونید و ببینید که چه تغییراتی رخ میده وقتی که آدم روی باوراش کار میکنه وقتی که آدم ایراداش گفته میشه و متعهد میشه که ارادش رو کنه و باورهای درست رو جایگزینش کنه چه نتایجی به وجود میاد هزاران هزار از این دوره استفاده کردن و من توی این دوره تمام راهکارها رو فکر کنم 14 جلسه هم هست تمام راهکارهای مناسب رو برای تغییر باورها به نحوی که بتونه زندگی شما رو یک زندگی رویایی بکنه آموزش دادم. تمام آنچه که خودم باهاش زندگی کردم تمام آنچه که خودم خودم و افرادی که بهشون مشاوره دادم استفاده کردم و نتیجه گرفتن من شاید بگم بالای چه میانم هزار نفر آدم بسید حضوری از من مشاوره گرفتن من بهشون کمک کردم اومدن راه همون راهکارهایی که در دور عشق موادت دادم بهشون دادم و زندگیشون انقدر فوق‌العاده شده که مثلا چند وقت بعدش با هدیه های مختلف منن دفتر من هدیه به من دادن تشکر کردن چقدر خوشحال بودن چقدر منو در آغوش گرفتن چقدر از خوشحالی گریه کردن و چه تجربه های قشنگی رو من دارم از در واقع افرادی که به این قوانین عمل کردن و استفاده کردن و امیدوارم که شما هم جز اون افراد باشید که بخواید زندگیتون رو اونجوری که دوست دارید رقم بزنید اگر از روابطتون راضی هستید اگر که همه چی تو زندگی شما در حوزه روابط عالیه اصلا نیاز نیست که شما از این مسئول استفاده کنید معلومه که شما روند مناسب رو دارید و همون مسیر رو ادامه بدید اما اگر به هر دلیلی روابطی داره دوابات شکننده یا یک الگو داره تو روابط شما تکرار میشه مثلا یک, یک فردی که خیانت میکنه تو زندگی شما میاد بعد شما رابطه رو را قطع یه فرد دیگه میاد خیانت میکنه بعد رابطه یه فرد دیگه میاد اونم خیانت میکنه یا یه فردی به شما دروغ میگه یه کارمندی رو میگید که به شما دروغ میگه بعد اون رو اخلاس میکنید کارمند دروقوی دیگهی در واقع پیدا میشه که بعد از مدتی میفهمید که اون هم سر شما کلا گذاشته بعد اونم اخلاص میکنید حالا این موضوع در رئیس یه رئیسی که قدر زحمات شما رو نمیدونه. بعد شما از اونجا میاید بیرون دوباره میرید دیگه دوباره اون رئیس هم قدر زحمات شما نمیدونه و این الگوی تکرار میشه یا در مورد فرزندانتون یا هر چیز دیگه ای که الگوی های یکسانی دارن با افراد متفاوت تکرار میشن این نشونه بسیار بسیار پررنگی که شما دارید فریکانس ها رو بزن ارسال می که این الگوها رو داره ایجاد میکنه به وسیله افراد مختلف و تا وقتی که نتونید باورهاتون عوض کنید این الگوهای نامناسب تکرار میشن و رنج بعد از رنج به وجود میاد بدبختی بعد از بدبختی مشکلات بعد از مشکلات به خدا من دیدم زندگی افرادی رو که به خاطر که قانون نمیدونن سببش عمل نکردن تمام زندگیشون رو نابود کردن و به قول خودشون به گفته خودشون حتی یک روز خوش قضیه زندگیشون نداشتن و دیدم افرادی رو که با استفاده از این قوانین تونستن زندگیشون رو هر روز مثل یک معجزه رقم بزنن یعنی هر روز که از خواب بلند میشن معجزات رخ میده براشون معجزات رخ میده به خدا همونجوری که برای من رخ داده برای بقیه هم رخ داده معجزات که ازش میگن اصلا این معجزاتی بوده که تو زندگی من رخ داده از بعد از از این قوانین استفاده کردن و امیدوارم کار به جایی برسه که همه افراد بخواهند که تغییر کنن که به صورت مثبت متحول بشن و از قوانین بدون تغییر کیهان از قوانینی که خداوند وضع کرده و قدرت رو تماما در اختیار ما قرار داده برای اینکه هر کدوم از ما تک تک ما زندگیمونو همونجوری که میخوایم همونجوری که اراده میکنیم واقعا رقم بزنیم استفاده کنیم واقعا این که دارم میگم هرجوری که اراده کنیم رقم بزنیم به خدا این این شکل زندگی منه این چیزی که الان دارم باش زندگی می‌کنم که هرجوری که اراده میکنم در تمام هر جوری که اراده میکنم می واقعا به لطف الله در زندگی و شرایط برای من رقم میخوره فقط به خاطر اینکه من این قانون کار کردم و خیلی تمرینش کردم و هنوزم دارم تمرینش میکنم و تو ابد باید این تمرین رو انجام بدم تا بتونم فرکانس های مناسبی رو ارسال کنم و پاسخ های مناسبی رو از صرف جهان هستی دریافت کنم امیدوارم که در واقع روزهاتون روابطتون شرایطتون هر روز بهتر و بهتر بشه امیدوارم که قدر خودتون رو بدونید خودتون لایق بهترین ها بدونید چون واقعا تا وقتی خودت خودتو لایق بهترین فرد ندونی بهترین زندگی ندونی بهترین شغل ندونی بهترین درآمد ندونی واقعا تا وقتی خودت خودتو لایق ندونی چیزی به داده نمیشه واقعا همینه امیدوارم خودتون خودتون رو لایق بدید لایق زندگی قشنگ لایق زندگی زیبا لایق زندگی کردن در بهشت هم در این دنیا هم در اون دنیا اول خودتون خودتون رو لایق بدونید و بعد به شما داده میشه اون که به این مسیر حرکت کنیم واقعا خدا رو شکر میکنم که با شما هستم خدا رو شکر میکنم که توی این مسیر دارم کمک میکنم به افرادی که مثل گذشته من در, در قعر جهنم خود ساخته خودشون بودن در قعر تنهایی و بیپولی و ناراحتی و بیماری بودن و و تصمیم گرفتن که کنند. و خدا رو شکر میکنم که به من این فرصت رو داده که بتونم دستی از دستان خداوند باشم توی این مسیر امیدوارم که با هم مسیل رو طی کنیم هر کجا هستید در پناه الله یکتا شاد باشید سالم باشید خوشبخت باشید و سعادتمند در دنیا آخرت فعلا خدا نگهدار